زر از معدن به کندن به درآید و از دست بخیر به جانکندن. دونان نخورند و گوش دارند. گویند امید به که خورده. روزی بینی به کام دشمن زر منده و خاکسار مرده.